بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله و صلات و سلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم رب الشخل صدری و یسر لی و من لسانی یفقه و قولی محترم روزی مکمل به این صورت میشه که چشم انسان روزدار باشه گوش انسان روزدار باشه زبان انسان و دهن انسان یکی از خوراک روزدار باشه و یکی از الفاظ و کلمات غلط. یعنی دهان و زبانتا باید منفی استعمال نکنیم قلبت باید روزدار باشه خب انار باید یک یکی از ربع که خب ما وقتی که شما میگین که چشممون روزدار باشه دستمون روزدار باشه پا من باید روزدار باشه قلب من باید روزدار باشه فکرم روزدار باشه گوشم روزدار باشه چشم روزدار باشه این چه قسم روز است ما خم مثلا داریم لakin در ماي مبارک رمضان نصف روزه دفتر دیدم تیر میکنیم مدریوار استم یا معتر دارم روزه د دا دانم است لیکن موسیقی را از صبح تا بنان میشنوم بناها این انسانی که دانش روزه دار غذا نمی ولی غیبت میکنه. کنه غیبتگر گوشت گاو و گوسفندی که حلال استور نمیخوره. گوشت برادر مسلمانش که حرام از او رو میخوره پس روزی خدا در چی شکستاند غیبت گرد؟ در خوردن گوشت یک مسلمان یک نفر مثلا غذای حلال رو لکن سخنای حرام رو میگه مزاق میکنه فکایی میگه سر مردم روش خندی میکنه دانش امیشه زبانش منفی استعمال میشه ای خود روزدار نشد دیگه ای خود خود فریب میتن ای خدا فریب میتن اینال وقتی که روزدار استی غذا نمیخوری باید زبانت در کنترل بریم گوش انسان باید روزدار باشه از شنیدن چیز که مخالف حکم خدا هست از او دوری بکنه. مثلا تصمیم بگیرم که من قبل از رمضان به شنیدن ها و موسیقی مبتزل عادت داشتم پس خدای من ما ماهی مبارک رمزان ایره ترک میکنم تا روزهدار شوم. من قبل از رمضان چشم منفی استعمال میشد سریال های ایندی، زنهای رقاسه، زنهای برهنه را سیل کردم. در موبایلم تصویر زن رقاصه بود در معترم تصویرهای دخترای رقاسه و دخترای فلم و دخترای اوندو بود پس من چه قسم روزدارم که در محترم انوزم روزم این پسکارتاست در دیوان خانیم این پسکارتاست در کتابچیم این پسکارتاست در بین موبایلم عین چیزها هست پس من خود روزدار نشدم از خاطر روزدار باید قبل از ماه مبارک رمضان تصمیم بگیره که ای امور منفیر کلشت ترک میکنم تا روزی از او روزی حقیقی شو و به دربار خداوند مطال جل, جل جلوه قبول شود. بسیاری کسا روزه دارن به زبان خود لکن روزیشو خدای عزوجل قبول نمیکنه انسان مسلمان باید در ماه مبارک رمضان اخلاقش به عالیترین ترین مرحله اخلاق برسه بسیاری کسایی هستند که روزه دارن ولی آنقدر بد اخلاق است که این است یا سیگریتی است یا چرسی است میگوا ولی ای سایه عملی است قالمقال میپرده پیغمبر صلی الله علیه و سلام میگه در ماه مبارک رمضان وقتی که یک روزه داره کس دشنام می و یا اخطار که مکرر تو جنگ میکنم بیا برای از خانت که مکرر جنگ میکنم ای روزدار باز برش بگو که که برادر دو مرتبه برش یکی که من روزدار هستم وقتی که کس دشنام دادش جواب دشنام جنته بگو برادر من روزدار هستم وقتی که گفت جنگ میکنم بگو برادر من روزدار هستم اما ای روزهدار که در ماه باراک رمضان در کوچه بد اخلاقی میکنه در بیرون بد اخلاقی میکنه کلکیلو خدا واز کرده یک نفر از زیر کوچش چیر میشه برازی دوست دشنام میتب آت از روزو که من روزدار هستم ای خود روزدار نشد ای خدا فریب میتب از این خاطر انسان مسلمان پیش از آمدن رمضان بین که ما شما تعهد بکنیم برنامه بگیریم بگویم پروردگارم ما میخواییم که روزی بگیریم که مطابق روزی پیغمبر خدا باشه یک نفر که رشوت میخورد سر از اون لعنت خدا نازل میشه مسئول است یا امکانات دارد پس باید گفت میخورد حساب بکن این که آمادگی بر رمضان بگیرد که من تا بال اینی می خوردم. آیا برای من خوردن این غذا حلال است یا حرام؟ در قضایی که انسان عرق نریختانده نباشد، زامت نکشیده باشد، با اجوانم مقابل بیچارم مسکین و فقیر است منان حضور بزور از بهش بگیرم و بخورم قیسی حضور بگیرم و بخورم و باز بگیرم روزدار استم چونو خدافریب میتین دین مقدس اسلام در دین مقدس اسلام خداوند مطال جل جل هو برمان بگه که یا <تصفيق> <تصفيق> أيها الذين آمروا ادخلوا في السلم كافة ای مردومایی که مسلمان هستید و یا ادعای ایمان میکنید ادخلوا في السلم كافة شما در اسلام به شکل مکمل داخل شوید چه قسم به شکل مکمل در اسلام داخل شوید مگر شما وقت میدون به شکل کامل در دین مقدس اسلام داخل شوید که شما فکر بکنید که یک اتاق اتاق بیماری است شما از این اتاق مکمل کمال خلاص شونید و داخل در اتاق ایمان چه قسم تا اتاق ایمان داخل شوم البته میشه که مثلا برده ی اتاق اصلا میخوایم از این اتاق تنها دست پای ما بکشم دیگه اعضای بدن ما مثلا دا داخل از اتاق ماریم یک پایم در اتاق ایمان و یک پای دیگه ام در دا اتاقی که کفر بی قسم نمیشه دانم دا روزدار است لکن گوشم 24 ساعت که در این موتر شیش میاده خانه در اومدهم زبه چند به تلویزیون رو چالان میکنم و حوج میرم بیرم خودم خانم مذای فامیل و بیخبر هستم بزرگترین مرست و بزرگترین گناه و خطال مبترین برا بعد از کفر، بعد از غفلت است انسان غافل است در اعمال نامش نوشته میشه که گناه پدر فا... که بر اولادای خود 24 سریال سیلیاله میماند برای خانم خود میماند و تفلکش اشتباهی کلمی لا اله, اله, اله, اله الله و محمد و رسول الله یاد ندارد ولی نام تمامی خوانندای این دیره یاد دارد این پدر واسطه مسلمان میگیره این برادر خدا مسلمان میگیره یک کسی که 24 ساعت به خانم خوده یک روز هم نفهمانده که تو به طرف اینمی فلم که سل میکنی برای دعایت قرآن برای تو مرد و برا تو زن گفته که و وقل المؤمنین یا قد و منفساره هم بگو مرد های مسلمان که چشمای خدا ببوشانن حتی میگه از چه دیدن چه زن نامهرم اما ای که قولایش لج باشه و یخنش باز باشه و برقصه از اون تو چشمای توسته نمیکنی و باز میگه که من روزی مای مبارک وقل للمؤمناتی به پیغمبر سن میگه بگو بر زنهای مؤمنان یغددن من ابسار هن که اونا هم خدا خود بپوشانند و بر ما مسلمانا میگه که او مسلمانا قو انفسکم یا ایوهاللزین آمنو، ای کسایی که شما ادعای ایمان میکنین لیکن ایمانتان درست نیست عقیدتان درست نیست عمل کردتان درست نیست کو انفوسکم و اهلیکم نارن و قدوهن ناس و شما خود و اعضای فامیلتان از آتشی که حیزمش انسانها و سنگهاست از اون نجات بتین وقایه بکنید قوی یعنی وقایه بکنید وقایه چی قسم بکنید که ما 24 ساد حتی در ماه مبارک رمزان هم ما اونم رو روش زشت ترک نمیکنیم زبان ما روزا نداره غیبت میکنیم چشم ما روزا نداره با چشم خود به طرف حرام به طرف نامحرم میبینیم گوش ما خواندنای مبتزل میشنوه و با وجود از ما مامریم که مبارک شاید ما بگیم که عیدت مبارک و ملائکہ بگه که و مبارک وعید یعنی عذاب و اونمون جزایی که بر تو داده میشه اون مبارک باشه پس آیا ما میخوایم که در ماه مبارک رمضان مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه و وسلم مطابق طریق پیغمبرستم روزه بگیرم یا به طریق خود دین خدا فریب نتیم خدا بازی ناتیم رشوت خور ناخزامت میکشه روزش خدا پاک قبول نمیکنه نماز ترابیش خدای پاک قبول نمی کنه. روزی که سحری و افتاری ازو با حرام باشه خدای پاک روزی از اون رو قبول نمی روزش روزیش میشه درست است اما قبول بارگاه الهی قرار نمیگیره. چرا در چیزی که مردار گت شد شما مثلا اگر کس بر تانی یک غورینان بیاره خوب گوشت و خوب برنج و خوب همه چیز باشه و ببین که در بین ازمی یک پای چلپاسک افتانه میخوری؟ اینمی حرام مثل پای چال است که تو در عبادت تو را داخل کردی بران عمل انسان قبول نمیشه درست است که تو یک نفر فریب دادی میگه من فلانی رو فریب دادم صدر پیش گرفتم فلانی رو فریب دادم 500 صدر گرفتم فلانی را بازی دادم پیدا و فنا کردم تو را فریب ندادی خود فریب دادی بخاطر از که تو در روز قیامت اینمی بار مردم سرشانه تو می یه میه در روز قیامت جواب گوه در مقابل کل هستی یک روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم از حساب کرام پرسان کرد که ای حساب من مسکین کیست حساب پیغمبر نا گفتن که ای پیغمبر خدا به نظر ما خو مسکین کسی است که مال دارایی نداره پول نداره، خانه نداره، زمین نداره بس، هم گفت نه من منظور مسکین روز قیامت هست کی مسکین روز قیامت؟ پیغنبست سلام برشان تشریع کرد گفت مسکین روز قیامت است که؟ وقت در میدان حشر در روز که فی و کان مقدار و خمسین و در روز که یک روزش اگر به حساب دنیا بگیریم پینجا هزار سال دنیا هست تا محاسبه کل کلگی حساب کلگی ختم شوم. د روز یک نفر میایه چندین مرتبه حج رفته و هزارها و میلیونها زکات داده میلیون میلیونها رکات نماز خوانده های مبارک رمضان چی که حتی غیر رمضان هم روزای نفلی هم گرفته صدقه و خیرات و همه چیز کرده کل کارها که انجام داده که وقتی که در میدان هش راضر میشه تمام مردمی که تون از او سل میکنه میگه اوه این جناب این رفعه که کود کود نماز داره کود کود روزه داره تمام ها را کرده کل چیزها از اعمالنامه دفترها پر است این که میره در اینجا کلگی میگه که این جنتی ولی وقتی که اینجا میره صدا میشه که فلان ولد و فلان فلان نفر نامش و نام پدرش و نام قریش و نام منطقهش و نام وظیفهش کل مشخصات از این بیان بشه و گفته میشه که این فیلن در مقابل ذات خدای از وجل قرار داره قاضی خود خدای از وجل است شاهدایش کیست شاهد دست شاید است چشم شاید است پای شاید است زبان شاید است اعضای بدنش شاید است کلش اونجا برای شاهید هستن اعضای بدن خودش یک یک دقیقه سابقی موضوع را ما برای کس میگفتم می که چطور دست چطور گفت میزنن پای چطور گفت میزنن خب این همیال ما و شما یک نفر را ببینیم فلم است که صدا ندارن تصویر دارن نشان میده تمام اعمال کردی یک نفره که 100 سال پیش کار کردن فیلم اثر ما و تو میبینیم که در کجا تجاوز کرد چیکار چه چی وقت رفت چه وقت بس آمد می میبینیم در مقابل پرده باز میشه و تمام اعمال از این نشان داده میشه قاضی خدای عزوجل که کس دروغ گفتن نمیتونه عالم الغیب و شهاده که از چیزی که در قلب انسان هم خطور بکنه با خبر است ولی بخاطر از اینکه انسان قناعت به تک بازی منکر شوه برش اونجا تمام اعضای بدنش سر شهادت میده و صدا میشه که اینی نفر اینال محاسبه شروز آیا کسی سر از نفر کدام ادعا داره کدام دوسیه داره کدام انتقاد داره که در دنیایی را گفته نمیتونست برادر عزیز بسیاری کسایی هستند که در دنیا بسیار صلاحیت داره بسیار تکبر داره در روز قیامت میگه مثل مرچه میگرده که کلگی در سر کلاش پای میمانه انسانی که امروز تکبر میکنه امروز وطن فروشی میکنه امروز به دشمنای اسلام خدا و افامیلو خدا در خدمت از اونا قرار میتن امروز ضد اسلام حرکت میکنه امروز به برنامه های اسلام خدمت میکنه او در روز قیامت و با موترهای لکس میگرده لکن در روز قیامت خداوند تو زلیل میسازد، مثل یک مرچه که تمام مردم از سر کلیدی سرش پایی تیر شده این نفر است، دفترای اعمالشان ماندگی است، وقتی که یکه یکه یک نفر میاید، پروردگارا، خدایا تو خود عادل استی، تو خود مهربان میربان استی، خدایا من به بسیار غریب بودم، لیکن یک عریضه خرد داشتم آمدن پیش اینمی انسان خائن. که خود داوای ایمان میکرد تا که پینصد روپه پی مرا نگرف خدای اونا محریزه مره اگه هم رادی نوشته نکرد. قاضی ذات خدای عزوجل است هیچ چیز دیگه نداره هیچ چیز دیگه نداره اینمی انسان است که یوم یفر المرع من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه ای است که از پیش انسان برادر و دختر و خواهر و بسر و اولاد و مادر و پدر انسان از پیش انسان فرار میکنه بدا به حالو انسانه که حرام میخوره و او را دادان اولاد خود میکنه حرام میخوره بر خانم خود میره حرام میخوره بر فامیل خود او را میکنه. و در روز قیامت کلگی اعلان براعت میکنم مگه ما از تو پدر حرام خور بیزار هستیم این پرستان میشه مگه پروردگار ای ظالمه که پیس ات رو پیمره گرفت خدایا جزای از این چیست خدای عزوجل وجل حکم میکنه که این ملائکه ها قطع کنین از دوسیه های نماز یزی عزیب ازی بتین بگیرین نمازهایش رکاتش رکاتشه در مقابل 500 افغانی فلانی نفر رشوت خور باید بفامه ایره بعض رشوت خورا را که ما میعنیم که رشوت نخو نامش پیدا و پنا نما برای چند تا موتر و چند تا اولی نخر که در روز قیامت جوابگوی هستی برای ما میگه که شما ضرورت های عصر را نمیفاهمین. یعنی ضرورت اصل ایست که ما باید رشوت بخوریم باید جنایت باید بکنیم. خب خیلی استاد وقتی که من نکنم خیلی به هرچ و تو برم از ظالم خدا نترس این خود دین اسلام خود دین آسان است سر صدار پنج بنای مسلمانی سر غریب سه بنای مسلمانی است وقتی که پیسه نداری سر تو دو بنای مسلمانی هیچ نیست زکات و سر غریب ایچ نیست در روز قیامت که نداشم ایم خدای اگر میدادیم مزکات میدادم. اگر پولدار میبودم میرفتم به هج. لکن از اردویش است. غریب سه برای مسلمانی داره خب پنجسد پنج روکاتش بر ازی داده شد. دیگه نفر میگه پروردگارم. قطار دو نفر دلن ازی استاد استند. اینی رو دادن باید فکر بکنن که اوتون نشه که من نماز میخوانم بسیاری کسا در صفحه اول نماز میشه میشن ولی در اونمود مسجد نمازاش کلش بر یک کس دیگه یک کس دیگه کومیده در پاورش سر شدی یک دفعه بیهابت میکنه اگر یک روز سرلوچ نماز خوانی شد سر سرلوچ خرمقال میکنه بیهابت میکنن یکم هست که کماک کردی سرت بیابت میکنه میزانه از خاطر بسیاری در مسجد به خدا گرفتار میشن چون مسجد احکامش اما نمیکنه نفر دیگه میه که پروردگار این شخصی که در اینجا استاد است این کود کت اعمال داره در دا فلانی روز مرنگم سیاه بود تر رنگ سیاه مرم مسخره خراس ها قدم پخش بود خدایا آیا ای قد پخش من م خدا, خدا پخش ساخته بودم و یا تو مرا ساخته بودی خدایا سر قد پخشم خنده کرد خدایا سر چشم کجی من خنده کرد خدایا سر بینی پخشم خنده کرد خدایا ی کمه که گوشم خراب بود سرم نام ماند خدایا یک کمه که پدرم خراب آدم بود مر مقابل مجلس بی بیاب کرد خدایا دو هزار نام سرم ماند پروردگارا ایخو امروز در مقابل تو امروز زور داشت، قوت داشت، امکانات داشت، من چیزی گفته نمیتونم امروز خو روز عدالت از خدای جزای مرس را از پیش ازی قسم به خدای عزوجل است، انسانه که به خاطر قد کسی سر و کس میکنه، به خاطر رنگ کسی سر و کس میکنه، به خاطر بدقوارگی سر و کسش میکنه، در روز قیامت مجبور میشه که بیری پایایش اویشم کنی بگی از خدا مرا ببخش. از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم بروی از جوز جو در اونجا ذات خدای از ذات عادل است که در مقابل هر حرف انسان انسان محاسبه میکنه باز هم اعمال دیگه ازی این بر از این ای نفر داده میشه بده جو، جواب شه. میگه جواب دیگه ندارم خیچی چی داری؟ بغیر از اعمال اعمالش هم برش میتن. نفر دیگه میگه رو دشنام داده صحیب امسایی ما بود یک بیلبرف من در طرف کوچش خطا خورد تلکی نواز کرد صحیب تا که تانست چیزی که از دانش آمد دشنام داد دموتر بالا می شدم کم که شانیم شانش دکه خورد یک دفع صحیب دانواز کرد نه ناموس ماند و نه زن ماند و نه خواهر ماند و نه فامیل دوزد چرا؟ چرا ایره دشنام دادی؟ سرش خم خمست، در دستاش زنجیرها بسته کردگیست با وجود از که نماز کود کود داشت به نمازهای از بر از این نفره که ایره ناکی دشنام دادن مال از خورده بود ایره دشنام دادن ایره مسخرگی کردن سر از ظلم کردن از پیسه گرفتن از ای حق گرفتن از ای به زور گرفتن به شکلی از اشکال ظلم کردن بلاخره دو سی ست نفر از اینا تمام اعمال از یا برای از ها میره تقسیم بشه چیز اعمال نمان اعمال نیک خلاص شد اینجا نفر دیگه اصطاد هستن پروردگار هم آل اعمال از این خلاص شد ولی حق ما خود سرش مانده جنایتو که در حق ما کرده خو مانده این رو خدای اینو چطور کنیم؟ خدای عزوجل بر شان که شما شما متأثر نشین. در مقابل هر حق از را گناه های تصراضی در مقابل دهی که زدی بر تو چند تا گناه های غیبت کردی. بر تو اعمال تا سرازی. جادو کردی بتی اعمال تا بر ازی این نفر اعمال نیکش خلاص میشه و اعمال بد دیگرها هم به اندازه از او بالای بار میشه وقتی که در ترازی میزان میگه هیچ عمل نیک نما در گناه هست مجبور دست و پای زنجیر بسته به طرف دوزخ میره برادر محترم بزرگترین اساس در ماه مبارک رمضان که آمادگی میگیری پیش ازی که در روز قیامت مورد باسپرس خدای عزوجل قرار بگیری از کسی که غیبت کردی از پیشش معذرت بخوای اگر گفته نمیتونی برش مغفرت بخوای از کسی که یک رو پیش خوردی یک رو پیش برو برش بده کسی که مسخره کردی پیش رو این مردم برو از پیشش معذرت بخوای سر کسی که فکایی گفتی برو از پیشش مزرد بخوای در غیر ازی در روز قیامت با وجود این اعمال انسان بر از او اعمال کلش برای اونمون نفرای داده میشه که در حق از اونا ظلم کردی یک روز یک مجلس بود 15 نفر پیش والی ششتن یک عالم داخل شد در مجلس والی دیت کاندید 15 نفر که است کل جباری از غیبت از شروع کرد که عالمو ترس کی سایبو ترس کی ترس تو ترس غیبت است این پس برآمد یا که او به خداو شنید غیبت ما را نه پاس البته قور شد رف. ای سایبر همیشار ازو کده که خرمای خوب و لوکس نبود اگر اگر خرمای کیلو پنجاری پی به بودید از خرمای کیلو 100 یک ویم یک سبد خرید پس آمد داخل شد قلگی سن از یارانش سر کردن که خب بیشتر ما غیبتش می کردیم غیبت ما رو متوجه شد فامیدم که ما بعد از این پیشروی والی میگویم و یخ رفت و نه سبد از خرما را گرفت آورد پیشروی کلشان شد سبد یک پشت تا خرما اجسب بیگی سبد یک یا پرسام که گفتن ما ما پیشتر که خودت آمدی خرما در مقابل چیست است گفت برادر عزیز شما که قدر جوانمردی میکنین در مقابل هر کلمه غیبت که م مرا میکنین یک اگلیکات نمازتان برای ما اسمس میشه هر غیبت که میکنی در مقابلش نمازهایید برای ما تو وقتی یه قدر قدر ام و نماز مرا زیاد میکنین پس خورما چیست؟ دیگه روز براتان میکنم می پله و میکنم خدا شما رو تشویق قوت به تکنوز غیبت بکنین چرا که تو خدای عزواجل میگه که غیبت یعنی گوشت انسان مرده رو خوردن است اگه یک نفر رو که اونجا مرده رو دفن کردن برو از امی گوشت شکپاره رو بگی بخو فکره یه تمومی دیوانه دیوانستی اصابت خراب است تو چی میگی گوشت مرده را کی خورده دی غیبت پیش خدای عزوجل اینمی قسم قسمت که یک انسان گوشت یک مرده رو بخوره وقتی که تو گوشت مرده را میخوری مخاباید بر تو خور ما که دانه چیدین جواب پس دگام خورده بری برادر عزیز بسیاری کسا روزه داره غیبت میکنه روزه داره فکایی میگه روزه داره مسخرگی میکنه روزه داره در دا گوشایش دا گوشیست و 24 ساعت موسیقی مبتزل میشنوه روزه داره روزه خدا کت فلم افتار بیکنه در ماه مبارک رمزان ایوازی که برای زید حاصل شوه و انوز گناه زیادتر میشه پس ای خود خودا فریب داده به که تصمیم بگیریم که در ماه مبارک رمضان ما باید روزی بگیریم که از روزه ما خدا و پیغمبر خدا خوشحال شود روزه ما قبول شود از حرام دوری بکنیم از غیبت دوری بکنیم از دیدن افلام و سریال های مبتزل دوری بکنیم اون دور در ماه مبارک رمزان در واضح شوه. قلب کنیم نمانیم که در خانه ما اون دعا داخل شود نمانیم که برای ما این درس بته دو صورت است که ما مسلمان حقیقی هستیم. کسانی هستند که روزه میگیرند. جوان است در آروسی شامادگی روزه است میگه باش که روزه میذود روزی عروسی عروسی در آروسیش تاب و صبح رقص میکنه. تا و صبح سازنده ها هست تا و صبح معصیت خدا هست و ما ها و مولوی و میریم زیر رو دل برشان میشینیم نکاح است میکنیم. آیا خدای اعظم جل ما را در روز قیامت خاط بخشید. آیا ما را خدای عزوجل خود بخشید که گناهگاه در گناهش تشویق میکنیم؟ و از اون مشروعیت میتیم که کاری بسیار خوب کردی ما خدا فریب میتیم؟ در روز قیامت دست تمام مردم است یک روز یک کسی مرگو گفت وستا شما کل گفار را کنده میگین گفتیم بخاطر خاطر از ازی که اگر ما نگویم دست کل گی دیخن ما در روز قیامت که تو ظالم خواهی نگفتی. من خود نمیفهمیدم که ساز ناروا بود من خود نمیفهمیدم که رقص ناروا بود من خود نمیفهمیدم که رشوات ناروا بود من خود نمیفهمیدم که زنه که یخنو خدا لچ میکنه و مردی که خانم خدا روی لچ و سرلچ در مقابل 카메라 استاد میکنن در روز قیامت در جمله دووسها حشر میشن من خود نمیفهمیدم خود تو عالم دین بودی برای من گفتی که این کار نکن از این خاطر ما مجبور هستیم دل کس خوش شد یا خفه شد در جنت دویوز داخل نمیشه داخل نمیشه در دا یوسکی هست که خانمش کت مرد نامحرم قصا بکنم خانمش شفل برداری شوه یا خرش واش شوه کالای قولای لوچ لوش که گاج بپرش در مقابل نامحرم ها. و او کت نامحرم گب بزنه خانم و خواهر خود در مقابل کت بچه کاکا و بچه ماما و بیادر رو خسربوری خود کت کسایی که نامحرم تصير استاد بکنیم عکس‌هایشو ببینیم و بر مردم نشر بکنیم و كله که ببینه و بازما بویم ما مسلمان هستیم به خدا در روز قیامت در جمله دوسها ها میشیم پس ما چرا؟ خدافرهم متیم مای مبارک رمضان را با گناه استقبال میکنیم و آیا با این که توبه بکنیم و با پرگاه خداوند متعال جل جلاله رجوع بکنیم ببین که با خداوند رجو بکنیم ببین که در ماه تعهد بکنیم بگوییم پروردگارا ما دیگه گناه نمیکنیم پروردگارا ما چشمای خدا خودو حفظ میکنیم ما گوش خدا حفظ میکنیم ما زبان خدا حفظ میکنیم ما تعهد میکنیم که خدای ما روزه خود مطابق روزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگیریم برادران مشکل دیگه که ما در افغانستان داریم این ختم های پنج شوا و دا شوا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود این نماز تراوی بیست پین در زمان پیغمبر خدا نبود پیغمبرستان چه قسم نماز که ما باید مثل از اوار نماز بخوانیم؟ ای خیزدن و شیشتان و در یک دفعه به در نماز خلاص کردن ای در حقیقت خدا فریب دادن است چرا خدا میتی؟ یک صحابی مبارک روایت میکنه میگه وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله نماز میخوان در رکوم می کردم به اندازه ده مرتبه سبحان ربی العظیم می حساب کرده تا که خوب سبحان ربی العظیم به اندازه ده مرتبه سه مرتبه خیلی بسیار کمش است که بر آدم مریض است بر آدم ضعیف است که باید سه دفعه بگویم بر آدمی که جوان است توانایی داره باید اف مرتبه سبحان ربی بگویم نو مرتبه سبحان را بیاله علا بگوید اگر ضعیف است از پا افتاده هستی باز درست است وقتی که ماهی مبارک رمضان، عبادت زیادتر میشه پس باید مار تراوی ر از نمازهای که در جماعت عادی میخوانیم زیادتر طویل بخانیم او ریش سفیدی که مخالفت میکنه با امامی که نماز تراوی را در چل دقه وقتی که خانده نمیتونی برو در خانه بیشی. بشی سر تو خوب فرض نیست. ولی ما کم نگی که باید ملازم در نیم ساعت تراوی را خلاص کنی. در کدام کتاب در نیم ساعت تراوی اومده؟ در قرآن نیست، در سنت نیست، در سیرت اصحاب کرام نیست. پس ما این تراوی نیم ساعته را از کجا پیدا کردیم عالمی که ای قسم می در مقابل سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلام خیانت می باید برش بریم که مولایی صاحب اساس نماز بخان. تجارت خو چور خو کم بخوان خوبش بخون. یک ختمه که در در شبو مهمه می‌کنیم کل كل عزیزتی استی یکی سر سرشان است دیگه سر خود میبونه کای به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلام است شما در عربستان و سعودی وقتی که ببینن در هر شب یک سفاره قرآن تلاوت میکنه رکوعش بسیار منظم است سجدهش بسیار منظم است وقتی حتی از ده ده سنت پیغمبر هم سن وقتی کس نماز میخونه میگه پیغمبر وقتی که ما دیدیم که به اندازه‌ی 10 مرتبه تسبیح میگه وقتی که سامیه الله حولی من حمیده میگفت بمیاندازی در تصویح استاد میشد بین یک روز یک دو رو کات نماز خود با طریقی پیغمبر خدا بخانیم در سجا به اندازی ده مرتبه سبحان ربیالالله پیغمبر سلام سجده میکد آیامو که شه سال نماز خانیم یک روز دو رو کات به پیغمبر نماز خاندیم در آیت قرآن میگه که احسن و عملو گفته نگفته اکثر عملو نگفته که 20 رکات نماز بخوان میگه 20 رکات نماز نفل نخوان دورکات نماز نفل بخوان لکن وقتش به اندازه 20 رکات باشه مسلمان نماز که با طریق پیرامبر صلی الله علیه و سلم دو رکاتش که با طریق شیطان میخواییم و ما خدا فرق میتیم دار رکاتش داده دکس پس ما بیاییم که اثر سر اعمال خود رجوع بکنیم در ماه مبارک رمضان شیطان ها بسته میشن درست است اما نفس شیطانی انسان نفس اماره سوی انسان ایخو باز است شیطان های جنی بسته میشن اما کسی که خودش شیطان گشته او چطور می کنه باید ما دوباره رجوع بکنیم توبه بکنیم تا که شیطان و نفس خود بتیم و باز باد ازو میشه که ما و شما به شکل درست نماز بخوانیم، به شکل درست روزه بگیریم و ماه مبارک رمضان با اینمی تصمیم نیت استقبال بکنیم و با در دربار خدای عزوجل دعا بکنیم که پروردگارا ما ان شاءالله کوشش میکنیم که در ماه مبارک رمضان شما بلند بگویم که تعهد میکن خدایا ما تعهد میکنیم که در ماه مبارک رمضان زبان ما روزدار باشه خدایا تاعهد میکنیم خدایا که گوش های ما هم روزدار باشه خدایا تعهد میکنیم که چشمای ما هم روزدار باشه خدایا تعهد میکنیم که در خانه خود اون دوها و فیلم این دیره بند میکنیم در ماه مبارک رمضان خدایا تعهد میکنیم که در چیزی که شک داریم که حرام است او را نخوریم خدایا تعهد میکنیم که در ماه مبارک رمضان نماز و خدا به طریق پیامبر صلی الله علیه و salam خدایا تو بر ما توفیق نصیب بکنی که ما اعمال دو درست بکنیم و مای مبارک رمضان را به خوبی استقبال بکنیم و به شکل روزه بگیریم که در او رضایت خدای عزو جل باشد خدایا آخرین جمله که از زبان ما در وقت مرگ ما از زبان ما خارج میشه او جمله و کلمه را کلمه لا اله الا الله محمد